فصل هشتم تعمل در شخصیت و منش ایرانی دوتایی های مشکل در خلقیات ما ایرانیان گفتارهای مختلفی درباره شخصیت ملی ایرانیان تولید شده است. در این فصل ابتدا چند دسته از, از این گفتارها مرور می شود و سپس دوتایی های مسئله ساز در فرهنگ و جامعه ایرانی و تیپ شخصیت ایرانی مورد بحث قرار می گیرد. در آغاز نگاهی میکنیم به انواع گفتارها یک پارادایم عقب ماندگی وقتی جامعه ایران در کلان سرمشق عقب مورد بررسی قرار میگیرد بیشتر خشونت و نگونبختی دیده می شود و بینظمی و نامرادی و افلاس و استبداد و انواع اوصاف و احوال و افعال و هیجانات عقب مانده و افکار و باورهای خرافی این نوع گفتارها معمولا به نظریه های مختلفی از منتسکیو، مارکس، ماکس وبر، ویتفوگل و غیر آنها اشاره و استناد می کنند تا توضیح دهند چرا ایرانی چنین بود. نظریه‌هایی مانند استبداد ایرانی، استبداد شرقی، مناسبات هامیپرور یا پاتریمونیال، شیوه تولید آسیایی و دولت آب سالار که در دوره معاصر نیز نفت سالار شده است. البته اینها نظریات مهمی هستند و در آنها ظرفیت برای تحلیل و توضیح جامعه ایرانی هست اما منطقی نیست که استناد به آنها مبالغ آمیز باشد و تاریخ طولانی و فرهنگ متنوع و نقش انواع نهادهای اجتماعی یک جامعه و ظرفیت و پویایی درونی آن بر اساس یک نظریه ساده سازی شود و نادیده بماند. برخی محققان ایرانی در این زمینه نقدهایی به دست دادهاند. چند پیشتر، بنو عزیزی دیدگاه های غربیان را درباره شخصیت ملی ایرانیان نقد کرده بود. دو، مطالعات میدانی یکی از پیشروترین کارها از نوع میدانی مطالعه‌ای بود که ماروین زونیس به صورت مصاحبه با حدود 170 تن از نخبگان سیاسی ایران دوره پهلوی انجام داد و کتاب حاصل از این مطالعه در 1971 توسط انتشارات دانشگاه پرینستون چاپ شد. این تحقیق نشان می‌دهد در موقعیت یک کسالار دهه چهل و پنجاه شمسی حتی آنها نیز که در مقامات کشوری و لشکری بلندپایه و بالایی بودند در عمق شخصیت خود تا چه اندازه احساس ضعف و بیقدرتی داشتند طبق این مطالعه نخبگان بلندپایه نه به آینده چندان خوشبین هستند نه امنیت حس می‌کنند و نه اعتمادی به جامعه و نهادها و اوضاع و شرایط دارند آنها در روابط بین شخصی در ارتباط با شاه و بالا دست ها و زیر عمدتا میخواهند خودشان را سر پا نگه بدارند زونیس در جای یک استاد برجسته دانشگاهی از یافتههای این تحقیق خود دلالت های معنیدار مهمی برای آینده توسعه در ایران آن دوره به دست آورده بود که رویدادهای بعدی منتهی به انقلاب نیز آن را تایید کرد در جامعه ای که هر کس فقط به فکر این است که برای منافع و مساله فردی خیش کار بکند، منافع عمومی همه جامعه لابد بر زمین میماند. زونیس بعد از انقلاب نیز کتاب مشهور شکست شاهانه را نوشت. اما کتاب منتشر شده وی در قبل از انقلاب، در باب نخبگان سیاسی ایران پس از سه چهار ده تاخیر در سال 1387، با عنوان روانشناسی نخبگان سیاسی ایران به فارسی ترجمه و چاپ شد. 3. خصوصیت‌های شایع در فرهنگ ایرانی. این دسته آثار از بعضی های فراگیر در فرهنگ و جامعه سخن می‌گویند. فرهنگ رجایی به استادی فرانسوی اشاره می‌کند که در اوایل دهه 50 یک چند برای تحقیق و تدریس در ایران بود. این استاد اول میبیند که دانشجویان ایرانی از تاریخ ایران چیزی نمیدانند. بعد متوجه می شود خود استادان ایرانی نیز مطلب زیادی از تاریخ کشورشان نمیدانند. بعد به این نتیجه می رسد که ایرانیان تاریخی طولانی دارند اما نتاریخیاند. رجایی ابتدا این نظر استاد فرانسوی را شخص شناسانه ارزیابی می کند. ولی بعدا او نیز به همین نتیجه می رسد. این نوع آثار گاهی رویکرد آسیب شناسانه دارند و خصوصیت های شایع مشکلساز را نشان می‌دهند و گاهی عمدتا در صدد توصیف فرهنگ روزمره مردم ایران و تفاوتهای آنان با دیگر جوامه نمونه‌ای نمونه آسیب شناختی را در بخشی از کتاب قبله عالم جغرافیای سیاسی ایران گراهان فولر می بینیم. تعبیر قبله عالم نشان دهنده موقعیت جیوپولیتیک ایران است که همه قدرت های جهان و منطقه به این سرزمین توجه دارند و به تعبیر آنری ماسه چار راه حوادث است. به نظر فولر طبیعی است که در چنین موقعیتی شخصیت و رفتارهای خاصی در فرهنگ ایرانی شیوع پیدا کند. فولر می نویسد مثلا هیچ کس تا حال نگفته است که ایرانیان مردمی سریح و لحجند. برعکس آنها معمولا سعی بر مجامله و پنهانکاری دارند گوی آنها از بس در دنیای ناکرداری به سر میبرند و احساس ناامنی و ناپایداری می‌کنند در نتیجه میکوشند بی کلاه نمانند یا حتی سرشان کلاه نرود برای همین نیز معمولا خودشیفته می‌شوند زرنگی در پیش می‌گیرند غیر قابل پیش بینیند و مابقی قضايا فولر با این نوبرسی ها میکوشد الگوهایی برای تحلیلی سیاسی از شرایط جامعه ایران در مطالعات استراتژیک بینالملل به دست آورد. در عین حال، فولر متوجه یک مطلب است و آن تحول در زیست جهان ایران امروزی است، چنان که وی از جمله کسانی بود که سناریوی موفقیت مذاکرات هسته‌ای را برای 2015 پیشنگری کرد. در این سناریوی فولر، ایران و آمریکا مذاکره می‌کنند و ایران اسلامی پیشرفت می‌کند. فولر به ترکیه و ایران به عنوان نوعی دموکراسی نسبی نگاه می‌کند که پشت مانه های مردمی دارد. مردمی که از نظر مدنی و شهری و اجتماعی حتی به دور از چشمان و مداخلات دولت‌هایشان روز به روز در حال تحول و توسعه ارتباطات و تعاملات خیش با جهانند. فولر قبلا در کتاب جهانی بدون اسلام از فوبیاهای بیپایی صحبت کرد که آبشخور سیاست های و یک جهانی میشوند و یکی نیز اسلام است. به نظر وی، ریشه مشکلات دنیا تر از آن است که معمولا تصور می شود. اگر اسلام هم نبود، همچنان ما جهانی با خشونت های فراوان داشتیم. در تاریخ پیشااسلامی اسلامی، دنیا جنگ های زیادی را تجربه کرده است، چه در تاریخ جهان اسلام و چه در تاریخ بیرون از جهان اسلام تعصبات و تخاصمات شدید بوده است و متاسفانه تا مشکلات اساسی در مناسبات خاص گرایانه ظاهر مدرن جهان هست، خصومت و خشونت نیز همچنان در کمین ماست. باری، به موضوع اصلی یعنی خصوصیت های شایع در فرهنگ ایرانی برمیگردیم. در این موضوع خود ایرانیان اهل نظر نیز گاهی با نگاه آسیب شناختی و گاهی صرفاً به قصد ارائه توصیفی از فرهنگ ایرانی وارد شده اند و بحث کردند. برای مثال ناصر فکوهی در زندگی روزمره ایرانیان گذافگویی دیده است و نتیجه گرفته است این خصوصیت بیشتر در فرهنگ سامیها و مناطق لاتین و کاتولیک در مدیترانه دیده می شود. و در فرهنگ کنفوسیوسی شرق دور پروتستان های شمال اروپا و پیوریتن های آمریکایی به مراتب کمتر است او این ویژگی را ناشی از موقعیت های شکننده و بیاعتمادی در ایران دانسته است در مقایسه می برای نمونه به نوشته های نعمت الله فاضلی اشاره کرد که نگاه آسیب شناختی را دخالت نمی دهد، و میکوشد توصیف فربهی از فرهنگ ایرانی و تمایزهای آن بدهد و امروزی شدن آن را ببیند. از این طریق است که مثلا در مطالعات زندگی روزمره ایران، گب زدن را شایع خلاف برخلاف ویژگی های شای در آمریکا که تماشای تلویزیون است یا در فرانسه که خواندن رمان است. مرتضا فرهادی جزو محققانی است که با تتبعات در فرهنگ روستایی و عشایری ایران به وجود سنت های سرشار همیاری و یاریگری دست یافته است. به نظر فرهادی در واقع این ضعف سازمان های بروکراتیک و شیوه های مدیریتی و مقررات است که چنین ظرفیت هایی را از بین برده است. جاویدان و دستمالچیان از همکاران پروژه گلوب در پژوهش میدانی و با پیمایش مدیران میانی حوزههای های بانکی، ارتباطات و صنایع غذایی به این نتیجه رسیدند که در ایرانیان میل به موفقیت و عمل کرد و پیشرفتگرایی از طریق عمل به ویژه در سطح فردی تا حدی وجود دارد. از کارهای تحقیقی که بگذریم، ژانر کارکترهای شایع و شخصیت هنجاری در ادبیات عامه نیز غالبا به طرزی بی حساب و کتاب بکار می رود و معمولاً در گفتگوهای خود برای مناطق و یا اقوام و یا شهرهای کشورمان اوصافی به کار می بریم. این گاهی سمیمانه از باب مزاح و شوخ شوختب است و گاهی نیز منشأ سوء تفاهم می شود. مانند گپها و شوخیهایی که درباره حسابگری اسفاهنی آسایشخواهی شیرازیها جدیت آذربایجانیها غیرت کردها و مانند آن داریم چهار توصیفات ذات انگارانه از روح قومی گاهی چنان از فرهنگها و جوامع و روح ملتها سخن گفته میشود که گویا هر ملتی یک ذات از پیش شکل گرفته گرفتهٔ ثابت فرهنگی دارد و این بر جبین او نوشته شده است و چندان قابل تغییر نیست این نوع سخنگفتن از روح قومی ناشی از یک فرض نیازموده است و آن فرض ذاتنگاری است. تایید و توجیه این فرض خیلی دشوار است که مثلا چیزی یگانه و ناب و ثابت به نام فرهنگ ایرانی یا فرهنگ فرانسوی وجود دارد. فرهنگ خیلی پیشیده و متنوعتر از این حرف است و در فرهنگ هر ملتی تنوعات و ترکیب گوناگونی هست و در رهگذر زمان و تعاملات دگرگون هم می شوند. البته گفتارهای ذات باور درباره روح ملت و اقوام گاهی با تسامح در بیان به کار می روند. بعضا این نو سخن گفتن از ملت‌ها و اقوام را از کسانی نیز می‌خوانیم که خیلی معتقد به تعامل و تحول و تغییر بودند. نمونه‌اش دکتر شریعتی است. وی با وجود داشتن رویکرد تحولخواهانه به فرهنگ‌ها و جوامع در برخی بیانات خود به شکلی ذات انگار از ملت‌ها و ها سخن گفته است. این نمونه ای از مقایسه آریایی‌ها و سامی‌ها در بیان شریعتی است. نژاد سامی زود زودخشم، حساس و تیز است. در خونش تلاتم و شلوغی و آشفتگی و ناآرامی هست شادی و غم و عشق و کینه و قضاوت و جنگ اوتوند است. موسیقی و رقص اوتوند است. نمونهش یا مستفاست. است. اسامی اوتوند است با تلفظ سریع مثل عرب، یهوه و قزنفر. اما نژاد آریایی آرام و سنگین است. آرامشی در گردونه کارمایی با پذیرش رنج و درک ناپایداری جهان. نیروانا آتش خاموش و سرد و آرام است. اسامی آریایی سنگینند مثل داریوش و انوشیروان. روان. ترانه ها آرامند. مانند ترانه مراببوس. سامی عجول است و آریایی صبور. حتا در 1200 سال صدها امام زمان آمده ولی سامی همچنان مرتب میگوید عجل فرجه آریایی سه هزار سال است که همچنان منتظر سوشیانت است سامی در هر 100 سال چش به راه مجددی است و آریایی نشسته است که به هر علفی علفقدی قدی براید شریعتی پیامبر اسلام را با بودا مقایسه میکند و ناصر را با گاندی به نظر شریعتی سامی درخت را و آریایی جنگل را با درختها میبیند. سامی یا به شدت خشمگین است یا در نهایت مهربانی. پیامبرش یک روز به فکر سوزاندن و مسله کردن قریش است و یک روز افع عمومی می کند. قرآنش به ابولحب چنان نفرینها می سپارت. سامی ارزشگذاری مطلق و آریایی نسبی دارند. او یک بعی، و این چنبودی است. او برونگرا و این درونگرا است. در آریایی میل به روحانیت هست و در سامی نیست. حال مطالعات مطالعات جدیتر نشان می دهد، همه جوامع به نحوی از انها در تغییر و تحولند. فرهنگ ایرانی هرچند در طول تاریخ باقی مانده است، اما اولا یکسره ناب نبود و حسب انواع موقعیتها با محیط پیرامون و فرهنگهای دیگر داد و ستت و تأثیر و تأثیر داشت سانیان در درون این فرهنگ تنوعات زیادی بود و سالسن در گذر زمان نیز تغییراتی در او به وجود می آمد و ثابت و بر یک منبار نمی ماند و همواره شاهد ترکیب‌های تازه ای در او بودیم برای مثال در دوره معاصر فرهنگ ایرانی در فضای دنیای مدرن قرار گرفته است و دگرگونی‌هایی در او به وجود آمده است که با گذشته خیلی فرق کرده است. فاضلی با نگاهی انسانشناختی و مردم نگارانه از امروزی شدن مسجد، روستا و حتی فالگیری در ایران بحث می کند. دیگر نیز چنینند؟ چه اروپایی ها؟ چه آمریکایی‌ها، چه آسیایی ها؟ و غیر آنها؟ یک شاهد آشکار بر تحول فرهنگ و جامعه آن است که شاخص هوش‌بر که اتفاقاً با متغیرهای ژنتیک نیز ارتباط دارد طبق تحقیقات فراوان تحت تأثیر انواع عوامل مانند تغذیه، سلامت، درآمد، آموزش و پرورش است وقتی هوش‌بر چنین است به طریق اولا دیگر خصوصیت‌های رفتار و شخصیت مردمان در بستر زمان و بر اثر انواع عوامل آموخته می‌شوند و تحول می‌یابند. در کتاب ریچارد لین و تاتوونهانن فهرست بهره کشورهای مختلف با حساب شاخص‌های درآمدی و مانند آن مقایسه شده است. در این کتاب ایران با متوسط بهره هوشی 84 در گروه متوسط با رتبه 99 قرار دارد. همین نو تحقیقات حتی درباره های آمریکا و رابطه ثروت هر ایالت با میزان هوش‌بهر به عمل آمده است. برخی مطالعات در سالهای اخیر حاکی از افت متوسط هوش‌بهر ایرانیها بر اثر مهاجرت نخبگان به خارج و کاهش ذخیره ژنتیکی و به آب رفتن میانگین مقدار بهره هوشی ایرانیان است. شاخص دیگر فرهنگی و اجتماعی که به یک حالت ثابت باقی نمیماند، شاخص آمادگی تغییر در فرهنگ‌ها و جوامع است که اخیراً توسط آکسفورد اکونومیکس منتشر شده است. این شاخص را یک سازمان حرفه‌ای خدمات ممیزی در هلند به نام KPMG تولید و محاسبه می‌کند. اگر این شاخص را نیز یک ویژگی فرهنگی بدانیم، ملاحظه می کنیم که تابعی از متغیرها همچون ظرفیتهای کسب و کار، ظرفیتهای حکمرانی، ظرفیتهای مدنی و مردمی درآمد و بار آئله جمعیتی است. این متغیرها هیچ کدام اموری ذاتی نیستند و آموختنی و اکتسابی و منوط به عمل اجتماعی هستند و حسب آن بالا و پایین می چما اینکه که در رتبهبندی بندی اخیر منتشر شده در 2015 این گزارش، سه کشور هند، الجزایر و روسیه بالا آمدند و میانمار، سومالی و سوریه از سالهای قبل باز هم به رتبه های پایینتر تنزل کردند. بدین ترتیب منطقی تر این به نظر می رسد که به جای سخنگفتن ذات باورانه از یک روحیه ایرانی به مطالعه دقیقتر انواع ویژگی های او به ابعاد و سطوح مختلف شخصیت اجتماعی و تیپ های متنوع فرهنگ ایرانی و پدیده های مختلف آن بپردازیم. ذات ایرانی در آنجا روبروی ما نیست به طور ناب که ما از آن به مسابه امری اینی برای همیشه پرده برداریم. ذهن ما آینه نیست که در او عکس یک ایرانی افتاده باشد، یک ایرانی که در همیشه تاریخ به طور خالص، ثابت و یگانه وجود داشته باشد. در بیرون آنچه هست نه ذات ایرانی، بلکه حالات مختلف ایرانیان است. تاریخ ایران یک سر تاریخ پیوستگی نیست، در او انواع گسست ها روی می دهد. تغییرات محیط، تحول پارادایم ها، تغییر تکنولوژی و متغیرهای جمعیت سنتی پی در پی در فرهنگ ایرانی تاثیر می‌گذارند گذشته از این در فرهنگ ایرانی انواع تکثرات و تنوعات است و حسب موقعیتها طور دیگر می‌شود و در تغییر و تحول است